فردای روزی که ملوک از همما سال میزا محسن خان بیرون آمد، او را برای مشباغر در حوزخانه خانه کردند. از اهل خانه امیرخان که صرف امانش نمیداد و زهرا سلطان که درد استخانش عود کرده بود، در مراسم حاضر بودند. منظر و سلطانه آخر کار هنهنکنان رسید، نقلی به دهان گذاشت و سکه در دست داماد و مبارک بادی گفت و ولیمه آخون را داد و رفت. هدایا به ملوک از طرف منظر سلطنه یک چارغت آقبانوی خالدار، یک خوار چیت چادری و یک توپ دویت سیاه بود و از طرف عباس خان به مشباغر یک اشرفی و یک دست کت و دو جفت گیوه یک سماور و چند دیگ و دیگ بر مصف و مقداری کاسکوزه هم خانم به پشت طویل و اتاقهای مهتر و کالسکچی که حالا خالی افتاده بود ورستاد با یک گلیم و یک جاجیم و شب مشباغر که ده سال جوان شده بود رخت خوابهای خود و ملوک را به خانهشان برد. نه جشنی از این رنگین تر میخواست، نه در زندگی شبیه از آن خوشتر داشت. شبیه که ملی زمان حامل پیام‌های های ملا و منیف دیوان برای خواهر و خوهرزاده ها بود، صحبت‌های دیگری نیز در آن خانه جاری شد که یکی از آنها مسئله خواستگاری مشباغر بود از ملوک وقتی آخر شب مشباغر بعد از سرکشی به بیرونی و اندرونی و انداختن چفت و گلون و بستن در و دروازه خانه به اتاق منزد و سلطنه احضار شد تا دستورات برگزاری شب سال محسن خان را بگیرد برای این عروسی رخصت خواست. روز دقیق مرگ میرزا محسن خان درست روشن نبود. محسن خان در شروع برگ ریزن از تهران سابه شده بود و در و دشت از برف سفید بود که خبر پرد شدنش را از بالای بام کار وانسرا آورده بودند. چاپار دیگر هیچ خبر دقیقی نداشت جز اینکه جنازه را با پرداخت قبر سلامتی به امانت در گورستان نزدیکترین آبادی به خاک سپردند تا بعد به مقبره خانوادگی هم شود و در این یک سال هنوز کسی به سرافت حمل و نقل جسد نیفتاده بود منظر سلطانیه هر بار که صحبتش پیش می آمد می گفت پسرش به با بفکر باشه من کی از این ورثه دارم منفر دوله جوش این کار را زیاد بزد. آخر قریب افتاده محسن خان. آدم حتی نمیتونه بره سر خاکش فاتحهی بخونه. ولی اکبر خان جواب میداد با بابا راحتش محسن که قید این حرفا رو نداشت. خیاموار معتقد بود که بالاخره از خاکش کاسه یا گوزه ساخته می و بس. حالا چه اونجا چه اینجا؟ وقتی مشباقه رجازه وصلت با ملوک را از خانم خواست، فکر من از زو سلطنه گرم حسابهای شخصی بود وگر نه واویلا شد. در این خانه خراب شده در قفای او چه این آیشه پتیاره پنهان از او چه لوندی ها کرده است. حالا مشباقه می سر پیری شیخ سنان شود. گرچه همه اینها بر زین خطور کرد ولی سر هزار سودای دیگر داشت سال آقا و شمسی آمدن خانداداش فروش مستقلات تدارک جشن عباس انغاز سنم بود که یاسمن گم بود با این همه گرفتاری و بدبختی کو فرصت تا آدم پاپی مشباقه را ملوک شود پس خورختنگی و سلطنه از شنیدن خبر از این رو بود که حالا باز درد سری به درد سرها افزوده می شود لبها را بر هم فشورد و بدن را مدتی آونگوار به حرکت در آورد و بالاخره گفت حالا تو هم وقت گیر را فردی مرده در نگاه مشباغر شعله ای بود که منزه و سلطنه را از پوشدن لباس قذب و حتی بر لب آوردن همان یک جمله نادم کرد. اگر مشباغر در این هیروید بگذارد و برود دستش در هنا میماندارا چه وقت درشتی است. من از درستان چشمها را به نقطهای در بالای سر مشباقه لوچ کرد و به نرمی گفت خود دانی مشباقه کی به میمنت بارکی شال ولی طوری نشه که کارا تداخل پیدا کنه سال محسن خان و همون اول خزان میگیریم بعد به با آبرو باشه آرد و شکر و پسته حلوا برنج و زعفران و خلال بادامش و زرد قیمه و پیاز و لپه و لیموی خورش، رشته و بنشن و کشک آش، دسته های نان لواش و مجموعه های سیاه و پیت های روغن و گونی های برنج همه در پستوی آش بس آماده بود. مشباقه رنجیده خاطر گفت، من بگذارم سال آقا زایشه، من سر و جان برای آقا می دادم. نور به قبرش به باره شاله تا قیامت، بشکن این گردن هم راش رفته بودم. من از را سلطنه با گوش، کاشگیر و کاشتن سبز نشد، حالا که نرفتی بی خود زبون نگیر. بذا به کار زندگیمون برسیم، عروسی باز و شکو ازم در پیشه، خودت بهتر مطلعی دیگه، من چی بگم؟ نیم دارالحکومه رو وعده میگیریم، سفره نانداخته یه عیب دره سفره انداخته هزار عیب، اگه سر نخی کم و کسر باشه، و با سرعت جنباندن بدن رو بالا بود نمی دانست به چه زبان برای مشباغر اهمیت این عروسی را توضیح بدهد. کی مشباغر می پی ببرد که او یک عمر در انتظار این گنج باداورد بوده است تا با دل بیغم از ریخت و پاش آن را به رخ در و همسایه بکشد و چشم حسود و را کور کند و تا آخر عمر حرص فیس آن و حسرت مال این را نخورد. با پدری که ثروت را برای پسر گذاشت، با برادری که ارث او را خورد، با شوهری که فقط خیرات کرد، این موقعیت را خدا برایش فراهم کرده است تا او از سر و همسر عقب نماند. مشباقه گفت خاطر جم، خانم حالیم خاطر جمع جشنی بگیریم که به دستانا بیاد. شمسلطنه پنهان از مادر لباس شال تریاکی توفهه ایمان از سلطنه را به ملوک بخشید همراه دو جوراب نخی. امیرخان چیزی نداشت که به عروس داماد هدیه کند دیوان سیاش را به مشباغر داد خلک پولش را به ملوک و همون شب با سر سنگین و بدن سوزان به بستر رفت. چند روزی بود که امیرخان خان تب و را با خود به مدرسه و منزل می کشید و دم نمیزد تا مباد خانه شود و از درس و مشق اول سال عقب بماند ولی بدن بیش از آن تاب نداشت منظه و سلطنه دستش را روی پیشانی داغ امیر خان گذاشت و گفت این روزا کم داشتم تا خوش شدی. آبم و گابم و نوبت آسیا والا بر من از در و دیوار میباره به نظرم غلنج کرده باشه یکی به رقب حکیم باشی مشباغر په حکیم باشی رفت و ملوک در اتاق امیرخان ماند و گفت چیزی نی امیر خان داری خون میتره کنی درست بود که آن تابستان امیرخان ناگهان طوری قد کشیده بود که با برادر بزرگ سر به سر می ایستاد و آستین قبا و پای شلوارش یک وجب بالا جسته بود و صدایش چنان برگشته بود که از حرف زدن شرم داشت نگاه معصوم و اسباب صورت کودکانه دیگر با قد دراز و صدای کلفتش متناسب نبود من از شیطان گویی تازه متوجه تغییرات پسرش شده است گفت چش به هم بزنی بچه اومشن قوله بیابونی سر زمین پا پاسمون ملوک بیا اونجا نشستی لاغل دم پای دوتا پیرنه شلوار امیرخان درست کن که به قدریی شور و واشور داشته باشه تا بعد حکیم باشید که اومد خبرم کن صورت سه گوش امیرخان از لبه لحاف بیرون بود و چشمها را بسته بود درد از سر به گلو و گوش ریخته بود و تب مرتب بالا میرفت کاش صداها بخوابد و او آرام بگیرد کاش تنهاش بگذارند و او بخوابد خوابت و با این همه درد دیگر برنخیزد همین خان در دوران کودکی زیاد بیمار نشده بود، آبل مرغان و سرخجه و مخملک در سنین مختلف آمده بود و رفته بود و اثری نگذاشته بود. کسی هم درد زیادی برای معالجه امراض به خود نداده بود. هر بچهی باید میگرفت اگر خدا میخواست زنده میماند وگر میرفت. مثل خواهر و برادر دیگرش. شیرخشتی در مواقع ناخوشی بود داده بودند و پاشوه‌ای در زمان تب کرده بودند و وسلام علاج بیشتر دردها روغن کرچک بود و تنقیه و فلوس دیگر کاری از دست کسی نمی آمد خاطری دردی که در ذهن داشت از روز خطن کنانش بود شش سال داشت که همراه عباس یازده ساله به دست دلاک دل سپرندش آنکه این باشی هم حاضر بود پدرش محسن خان روز حال عادی نداشت برخلاف معمول زیاد بالا و پای میرفت و به استاد سلمانی پی دستور می داد. امیر امیرخان بیشتر به دلیل رنگ پریده و فقانهای برادرش از عاقبت کار خود راست داشت و در حوزخانه پنهان شده بود تا گرفتار تیغ دلاک نشود. صدای محسن خان را از مخفیگاه شنید که به حکم باشه می گفت امیر باشید خون این بچه دیر بند میاد نافشو در بچگی خیلی از پایین زدن چند شب متبالی خوندزی داشت و بچه ناله میکد من تحمل شنیدن نالش رو نداشتم به طوری که دست به دعا برداشتم که یا زشت تموم شوید یا گرفتنی زودتر بره. حکیم باشی پرسید نتیجه چی بود؟ محسن خان با خنده شجت زده و عصبی گفت خوندوزی همون شب بند اومد ولی اثر دعای من نبود من بنده شکاک که مستجاب دعوه نیستم حکیم باشی گفت برای قبول افتادن دعا دل پاک کافیه به هر کیفیت من امروز از شمای حکیم باشی استعدا کردم به کار دلاک نظارت داشته باشین که نیازی نباشه دست به دعا بردارم و وگرنه روز خون خبر میکرد پدر با اینکه میخندید صدایش صاف نبود بالاخره از حزخانه بیرونش آوردند صدای ملی زمان از اتاق منزا و سلطنه میآمد شمسلطنه با چشمهای بار در دالان منتظرش بود و گفت وورا و خندش را پشت دست پنهان کرد مشباغی رو را محکمتر به سیننش و خال منور پایین پله ها پیشانیش را بوسید و گفت قبل از اینکه بگی آهکار تموم همیش شد عوضش نمیدونی خاال چی آورده فرود کن. در چشمان گرد اشک آودش خنده دوید خان و شاهزاده کنار حکیم باشی و استاد دلاکی ایستاده بودند. مستخدمین همه حضور داشتند. در اتاقها شربت و شیرینی دور میگشت دلاک گفت عدد فرد برای ختن سعده، محسن خان صدا را به طرز غیر عادی بلند کرد و گفت خب بفرمایید بندر را دوباره ختم نکنید، من که دو پسر بیشتر ندارم، و در میان قاه قاه خنده علی اکبر خان و از اتاق بیرون رفت، ترس از منظری دست دلاک و بیشتر از نفس درد بود، درد یک لحظه بود و بعد سوزش زرنیخ و بعد تا چند روز زغزغ زخم در آن لباده سفید دراز. در آن زمان درست نفهمیده بود که چرا در گذشته پدر آرزوی مرگش را کرده است، گرچه در آن موقع هم به غریزه میفهمید یا به قرینه لحن محسن خان می دانست که پدر خیر او را میخواسته است. معنای کامل حرف میرزا محسن خان با دردی که در گوش و گلوگش پیچیده بود ناگهان روشن شد. به و اگر درد بردخواست، برن نخیزد. پدر برای پسر درد نمی است. به چشم چهارده ساله امیرخان از هشت سال پیش پیرتر نشده بود. همان ریش دراز دو شاخه را داشت و شبکلاه سفید بر سرش بود و هنوز دستهایش خشک و خنک بود. به منظف سطنه گفت خیر قلنج نیست. لوزتین گوش فرم کرده. باید مواظب باشین باد به بیزه ها نیفته. چیز مهم نیست انشالله رفت میشه باید استراحت و یک بار دیگر داخل حلق را ماینه کرد و به گردن و گوش دست کشید و نسخه نوشت و به دست مشباغر داد و با بامون از سلطنه از اتا بیرون رفت. ملوک به مشباغر گفت با این نسخه حکیم یه کاغذ کموت بگی بیا. مشباغر گفت بهاد و فرهم قصص به گروش اختفار. رفت آقا خاک او عمره ای باشه. خمش رو بروز نمیده امسالم همش قشلاق بوده هوای کوبش نخورده یه جون بگیره بچه ملوک گفت چیزیش نیمش باقه رست خون میتره کنه به هرزت عبا سرمام زده به گوشش کاغذ کبود بیار درست میشه گوشت جوون لب تاخچه هست و با خنده مشباقه را روانه کرد وقتی نسخه رسید ملوک از ورقه کاغذ کبود قیفی ساخت و نوک باری آن را در گوش امیرخان کرد امیرخان درد تندی را احساس کرد و صدای جزجز جز ممتد مایهای را که جذب کاغذ میشد و که ملوک قیف را بیرون کشید قسمت عمده سنگینی درد از گوش و حلق امیرخان برچیده شده بود سرش سبک شد و خوابش برد چندین روز امیرخان در خانه بستری بود زهرا سلطان برایش شوربا و کته بار میکرد و ملوک اولی را با آب، غوره و دومی را با ماست بخوردش می داد و مشباقر شبها برای شاهنامه می خاند. در حین خواندن گاه شگردهایی را که از نقال غفه خانه بود، مخلوط با درس هایی که از امیر خان گرفته بود، در می کرد. شمسلطنه سرش گرم تهیه و تدارک پرده و روم و و لحاف کرسیش بود. تمام آن چند روز حلاجی در حیات خلوت پنبه تشکای او را میزد و غلاف میکرد و صدای زهزهش اتاق امیرخان را میم باشد. شمسلطنه گاه به گاه به سراغ برادر کوچک میامد و توصیه کرد بی زود را نیفتی آقور میشی. وقت دیدارهای عباس خان آخرها شب به اتاق امیرخان وارد بارد میشد و میگفت پسی لگدت زدی و خودش میخندید و هم سفارش پاسداری از بیزاتین را میداد و کتاب درس فرانسه را باز میکرد دیگه همین یوزا خواندایی مییسه با مادام آنژل باید فیانسه حرف زد اباس خان مراحل ابتدایی آموختن زبان فرانسه را در مدرسه الیانس پشت سر گذاشته بود ولی از آنجا که روش تدریج صرف درست افعال و نوشتن املاع صحیح را بر سخن گفتن به زبان مقدم میدانست و القه اباس خان هم فقط به صحبت کردن بود پیش رفت چندانی در کارش حاصل نشده بود تمام تمرینها و مشقهایش به خط امیرخان با جوهری بنفش در کتابچهیی نقش بود با نمرات خوب امیرخان هم حالا مدتی بود که به مدرسه الیانس میرفت و از آنجا که به یمن راه کار عباس خان مقدمات را در خانه آموخته بود، از همان ابتدا با برادر همکلاس شده بود. معلمش مردی بود از اهالی مرسی، به همین دلیل فرانسهی که امیر خان حرف میزد با لحجه شیرین جنوبی بود که مخرج را داشت و او را از شر قیقه های پقل و پقه عباس خان نجات داده بود. از سلطنه روز یک بار تا امیر خان زر می زد. روی صندلی راحت مینشست و تن را میرون تا با خیال راحت از درد سرهاش ای پدرت که رفت ولی فکر فردا رو نکرد من موندم تگا تنهایی زن لچک به با هزار یک درد بیدم. خواهرش که فکر غغ رو کردن برادرتم که دنبال واش. و با یادآوری ذهنی عروسی آب و عباس خان صدا رو نرم کرد خب خلاف بلاخره اون میره سر زندگی خودش. اینم اینجا خو خب سامون میگیره اما امخوام وقت پیدا کردی و اینکه بیفتی و ناخوش درست سره به سنگ ها. چند حواز هم چندجا باید کارکنلاغ، نقزینه هیچی تو دستم نیست و کف دست رو فوت کرد آه هیچ؟ برای جشن عروسی عباس و شکو ازم هیچ چی خرج نکنم چند زار تو من لازم دارم همونم ندارم دستم خالی هرگه اگه معامله سر بگیره خوب خوبه مرد پیدا شده کارون سر و همومو میخود. اگه بش خونه پام نارم بش بفروشیم دیگه بهتره آدم با صد نفر حساب پیدا نکن و چشمهایش بدون آنکه نگاهی داشته باشد بر صورت رنگ فریده یمیر چپ ماند و تکنهای بدنش یکنواخت و آرام شد امیرخان دلش میخواست من سرطنه هرچه را خست و نیست بفروشد و اینقدر از بیپولی دم نزند اصولا چرا این حرفها را میزند محظ صلاح دیده با او حتما نیست امیرخان میدانست که مادرش او را خیلی بچه تر از آنچه هست به حساب میآورد و تصورش این است که نه چیزی میبیند و نه چیزی میفهمد محسن خان هم که دیگر نیست که به محض شروع شکایات زنش پول در کاغذ زر بپیچد و اشرفی درکیزه کند و برایش بفرستد که قال بخوابد. پس چرا مدام نق میزند و غم به دل او می ریزد. پیرک بر هم گذاشت و فقط به شنیدن صدای منور و دوله چشم کشود، خوابش برده بود و آمدن منور دوله را نفهمیده بود. ما اینکه خال منور صدا را خفه بیرون میداد ولی نگرانی و قاطعیتی در صدا بود که گنگی خواب را سرش پراند. سلاب به فروش دیمن از جان بسیار ولی سهم میون چی می میشه. شمسی مال خودشو میبره به زخم زندگیش بزنه، بایدن بزنه. ارسا عباس هم به مصرف خیر میرسه، چه از این بدن؟ ولی سهم امیر مال این بچه سغیر، پیش تو امانت من از که باید حیف و میل بشی تو مسئولی؟ تکانهای تن منظر سلطنه تون شده بود و لبهایش بر هم جفت بود. چه بگوید به منفر دوله که همه چیز دارد و قم چند هزار تومن نمی خورد؟ شوهر بر سرش است و درد اداره ملک و املاک نمی کشد. بچه ندارد و به او درس بچه داری میداد. اگر زبان باخس کند که تنه و کنایه نیست که به اون نزند. اون افر دوله چشمهای گردش را به التماس به صورت منظور السلطنه دوخته بود و از او انتظار جوابی معقول داشت این بار آشکارا در صدد نبود که با شوخ و خنده آتش خشم منظور سلطنه را خاموش کند منظور سلطنه در فکر بود که باشد فرداست که شوخ و عظم از راه برسد و به این خانه هم مکنت بی حساب شود آن وقت او هم پا روی پا می اندازد و به منفر دوله نصیحت و دلالت می کند و مسئولیت و وظایفش را یاد آور می شود و نمک به زخمش می پاشد. اصولا این ماترک بخور و نمیر مال پسر اوس یا مال پسر منور که به خودش اجازه فضولی میدهد. آدم بی اولاد پادشاه بی غم است خوش کردن و تیمار و داریش با او خرد فرمایشش با منور. تا من از دهان باز کرد امیرخان نیم خیز در رخت خواب نشست و دست را به طرف منور و دوله دراز کرد و گوه خال منبر داشتم خوابتون و می دیدم الان که اومدین